این داستانک کوه سسیما یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون دو برادر بودن یکی توانگر و دیگری تنگ دست برادر توانگر هرگز کمکی به برادر فقیرش نمی کرد. اون مجبور بود برای یه لقمه نون بخور و نمیر از صبح تا شب جون بکنه حتی زمانی رسید که با وجود کار زیاد زن و بچهش فقط نون خشک خالی می‌خوردن یکی از روزا که برادر فقیر با گاریش از وسط جنگل می‌گذشتن از میان درختا چشمش به کوهی بزرگ و خشک افتاد که قبل از اون هرگز اون کوه ندیده بود همونجا وایساد و با تعجب به اون کوه نگاه کرد همونطور که وایساده بود، از دور دید که دوازده تا مرد با قیافه های خشن به طرفش میان. چون فکر کرد که اونها راه زنن، گاری خودش رو بین بوته ها پنهان کرد، خودش هم از یه درخت رفت بالا تا و بر رو زیر نظر بگیره. و اومدن و جلوی کوه وایسادن و فریاد زدن. ای کوه سسیما، ای کوه سسیما، خود را باز کن. بدون درنگ کناره های کوه از هم باز شدن و اونها با عبور از اون دهنه وارد کوه شدند. بعد کناره ها به هم پیوست و دوباره کوه بسته شد. بعد از مدت کوتاهی دوباره دهانه کوه باز شد و اون دوازده مرد در حالی که گونی های سنگینی پشتشون بود از دهانه بیرون اومدن و کوه رو مورد خطاب قرار دادند که ای کوه سسیما، ای کوه سسیما خود را ببند کناره های کوه فوری به هم اومدن و راه ورودی به داخل کوه از نظر ناپدید شد بعد اون دوازده مرد راه خودشون را گرفتن و رفتن همین که مرد از اونجا دور شدن مرد فقیر که حس کنجکاویش سخت تحریک شده بود از درخت پایین اومد و دلش میخواست بدونه که داخل اون کوه چه خبره بنابراین رفت جلوی کوه ایستاد و گفت ای کوه سسیما ای کوه سسیما خود را باز کن دهانه کوه باز شد مرد داخل کوه رفت و در دل اون انباری پر از طلا و نقره و کپه‌هایی از مروارید و جواهرات گرانبها دید مرد فقیر دست و پاش رو گم کرد و نمی‌دونست باید چی کار کنه آیا کمی از اون گنج رو بردار و با خودش ببره یا نه؟ بعد از تردیدی طولانی جیبهای خودش را از تکه های تلا پر کرد و به جواهرات گران قیمت دست نزد. وقتی از مدن بیرون اومد گفت ای سسیما، ای سسیما خود را ببند. دهانه کوه بسته شد. مرد فقیر عرابه خودش را از پشت بوته ها در و راهی خونه شد اون دیگه آدم بی نیازی شده بود و غم و قصه از خونش رفته بود چون هرچی میخواست و میتونست برای زن و بچهش تهیه کنه اون سالیان زیاد با راحتی و خوشی زندگی کرد ولی هرگز از کمک به دیگران دریغ نکرد و با همه با مهربانی رفتار کرد دومین بار که به کوه رفت از برادرش پیمانهی قرض کرد اون این بار تلا و نقره پرداشت و به جواهرات گرانقیمت دست نزد. بار سوم که میرفت باز هم از برادرش همون پیمانه را امانت گرفت. این بار حس کنجکاوی برادر ثروتمند برانگیخته شد مدت مدیدی بود که اون به خوشی و سعادت برادرش حسادت میکرد و کنجکاو بود بدونه که چطور به این همه رفاه و آسایش رسیده اون میخواست سر در بیاره که برادرش این پیمانه رو برای چه کاری میخواد. فکر شیطن به سرش زد و ته پیمانه حفره کوچیکی ایجاد کرد. بعد از اینکه پیمانه رو از برادرش گرفت متوجه شد که یه تکه طلا داخل حفره افتاده. فورین از برادرش رفت و پرسید با این پیمانه چیا اندازه گرفتی؟ برادرش جواب داد گندم و جو. برادر توانگر، اون تکه طلا رو ته پیمونه بهش نشون داد و گفت اگه حقیقت رو به من نگی نزد قاضی میرم و ازت شکایت میکنم. برادر فقیرم مجبور شد از زیر تا پیاز ماجرا رو برای برادرش تعریف کنه. برادر ثروتمند با شنیدن این ماجرا اسبش رو به گاری بست و به طرف کوه رفت. او تصمیم داشت از فرصتی که به چنگ آورده استفاده کنه هرچی میتونه جواهر با خودش برداره به کوه که رسید فریاد زد ای کوه سسیما ای کوه سسیما خود را باز کن کوه اطاعت کرد و مرد وارد کوه شد راه ورود بسته شد مرد وقتی اون گنج رو در برابر خودش دید مدت طولانی مات و مبهوت بود و نمیدونست از کجا شروع کنه. سرانجام دست به کار شد و با حرص و ولع هرچی که میخواست و جمع کرد بعد تصمیم گرفت برگرده. اون گنجینه روح و قلبش رو تسخیر کرده بود و باعث شد کلمه هایی رو که باید می کرد تا کوه باز بشر و فراموش کنه. اون چنین گفت ای کوه سیملی ای کوه سیملی خودت را باز کن چون این کلمات درست نبود کوه همچنان بسته باقی موند اون سخت به وحشت افتاده بود هر قدر بیشتر فکر میکرد گیجتر میشد و کمتر به یادش میآمد که باید چی بگه تمام گنج و ثروتی که به دست آورده بود براش بیفایده بود و نمیتونست بهش کمک کنه شب که شد کوه دهان باز کرد و دوازده راه وارد شدن وقتی چشمشون به اون مرد افتاد خندیدن و گفتن پرنده کوچولو بالاخره به دام افتادی فکر کردی ما متوجه رفت آمده نمیشیم چند دفعه اول خوب از دست ما در رفتی ولی این دفعه دیگه مثل دفعه های قبل نیست مرد با لحن رقتباری فریاد زد فوت قبل من نبودم. برادرم بود. من دفعه اولمه که به اینجا اومدم. اما هرچی آه و ناله کرد تا بتونه زندگی خودش رو نجات بده بیفایده بود. و بالاخره راه سنا جان برادر رو گرفتن. کانال تلگرامی هزار های افثان. داستانهای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه .me می سلش مهران دوستی تی نقطه ام نشانی وبلاگ ما s t مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی